سور معارج هم از سوره های مکی هست بعد از حق نازل شده نهمی سوره هست سور معارج در این سوره عتاب است، سرزنش است، زجره هست برای کسانی که اونا عذاب را باور ندارند بعضی از مشرکین بودند که عذاب را قبول نداشتن باور نداشتن میگفتند که اگر راست عذاب برای ما بیار چنانچه در اول این سوره می خانیم سأل سائل بعذاب عذاب واقع سوال کرد یک سوال کننده برای عذابی که واقع میشه گفتیم این عذاب را بیار برای ما این سوال کننده کی بود؟ والله عالم ولی اینطور از روایت ها معلوم میشه خیلی از مشرکین چون جری بودند بی باک بودند بی پروا بودند هر یکی می گفت عذاب یکی از اون افراد که نظر ابن حارس هست در سوره انفال می خوانیم که او اینقدر جری بود و اینقدر گستاخ بود که گفت اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك خدایا اگر این قرآن حق است از طرف تو هست فامتر علينا حجارة من السما. از آسمان بر ما سنگ بباران او اعتناب عذاب علیم یا عذاب دردناکتر از برای ما بیار یعنی این غیر بر خود مطمئن میگه این دروغه اگر راسته خدای من غبور در من عذاب بده بسیاری از مفسرین گفتن این سأل السائل و مراد السائل همین نظر ابن حارس است اما ابن عباس رضی الله عنهما میفرماید فرد دیگر بود به نام حارس ابن نعمان او گفت که زودتر عذاب بیار من عذاب میخوام من قبول ندارم و دیگر افراد هم بودند گستاخ ادب از مشرکین امروز خیلی از افراد هستند در دنیا که میگویند که ما منتظر عذاب هستیم بیاد چرا نمیاد عذاب خیلی از افراد سنگدل هستند تو شکنجهگاه ها تو زندان های دنیا از جای مختلفی گاهی تعریف میشه میشنویم که میزنن مجرمین را و اینها وقتی الله الله می میکنم میگه کجا الله تو چرا بداعت نبی میرسه بیاد من اینجا هستم با چی جرئتی ولی نه میدونه خدا چقدر صبر داره خدا مسلمانیست که فورا بزنه تو گوش الله عز و جل حلیم است خیلی بردبار است تومش و مغرور بر حلم خدا دیر گیرد سخت گیرد مرترا خیلی از کشورها درسته خیلی از کشورها و ممالک هستند که بسیار مغرورت و می منتظر عذاب خدای شما هستیم الله تعالی اینجا همین بیان می سال سأل سائل بعذاب واقع سوال کرد سوال کنند دی برای از اون عذابی که واقع میشه لیل کافرین برای کافرین یعنی مستحقین عذاب اصل کافرین هستند مؤمن مستحق عذاب نیست اما خیلی متاسفانه که مؤمن تمرد و سرکشی بکند چند روزی همون عذابی که برای کافرین هست هم چشد لذا لیس له دافع من الله ذل لیس له دافع نیس اون ازاب را داف کننده این نفی شفاعت قهری است یعنی کسی نیست جلوی عذاب را بگیرد ازاب خداست من الله این منزله ازاب است عذاب را کی نازل میکند الله طرف الله است اون اللهی که ذل معارج این سوره را معارج میگم به همین خاطر اون اللهی که ذل معارج است دارای معارج است معارج یعنی چه یعنی عظمت اصل معراج میگن پەلکان را که بری به بالا یعنی خدایی که باید مراحلی را طی بکنی تا به قرب خدا برسی خدایی که بسیار عظمت داره بسیار بالا والاست است تعرج الملائکه والروح الی اروج میکنند الملائکه وجبرائیل امین بسوی الله فی یوم کان مقداره خمسین الفسن همه پیش خدا میرند در اون روزی که مقدار اون روز پنجا هزار سال است در روزی که مقدار اون روز پنجا هزار سال است یعنی یک روز قیامت پنجا هزار سال است از کنم خدمت شما که این چند تا توجیه دارد؟ به این اینکه در آیه دیگری در سوره سجدش ما که فی اوم امکان مقدار هو الف سنت من مطعود می در روزی که مقدار اون روز چند هست؟ هزار سال الف سنت من مطعود اونجا هزار سال فرمود اونجا پنجا هزار سال فرمود بعضی می گویند که منظور اینه که به طرف الله عزوجل انسان وقتی که عروج بکند سیر عادی هزار سال است یعنی انسان به اون جایی که عظمت خدا است اون جایی که بالاخره آثار اصلی قدرت الله عزوجل هستند اونجا میخواد برسه گرچه فرشتگان در یک لحظه میرسند اما با سیر عادی 5 هزار سال میشه و با سیر بعضی سیرها که تر هست هزار سال میشه بعضی ها کمتر بعضی ها بیشتر. اما بعضی میگن نه این در رابطه با قیامت هست در باره قیامت هست توجیه اول اینکه اشاره به عظمت الله هست که رسیدن به اون جایگاه 5 هزار سال طول میکشه. که انسانها سیر عادی بکن اما بعضی میگه نه، اشاره به قیامت از قیامت پنجا هزار اونجا که هزار سال, سال گفته برای هر یکی فرق میکنه با توجه به اعمال انسانها بعضی ها برای اونا خیلی دیر میشه بعضی ها هزار سال بعضی ها برای اونا نیم روز میشه به اندازه نصف روز میشه بعضی توجیهات دیگه آوردن که اللہ معلوسی ذکر کرده میگه اینا قوی نیستن. میگه نه از اول دنیا تا روز قیامت این مسافت پنجا هزار ساله زمان از اول دنیا از روزی که دنیا درست شده الله خدا میدونه که درست شده تا روزی که قیامت برپا میشه پنجا هزار ساله اما خود روزی قیامت هزار ساله یک روزش این اقوال مختلف است که اکثر این اقوال قوی نیستند ضعیف هستند و بهتر اینه قبلا هم خدمت شما عرض کردم یک چیزی را که قرآن به صورت مبهم میگه سربسته میگه ما هم به همون صورت مبهم بهش ایمان داشته باشیم. الله میفرمد فصل بر جمیلا ای پیامبر اینها میگن اون روز کی میاد تو صبر کن تو عجله نکن. فصل بر صرا جمیلا. شما صبر کن صبر زیبا صبر زیبا و جمیل کدوم صبر است. اون صبر که در اون شکایی نباشد در اون داد و فریادی نباشد در اون کلمات ناسپاسی نباشد. بعضی ها هستند صبر میکنن صبر جمیل نیست صبرشون برای مصیبت حرز میکنم. میگن که صبر کن میگه من صبر میکنم صبر نکنم چه کاری میکنم؟ هیچ کاری از دست من نیست ساعت نیست. پس تو نمیتونی کاری بکنی که صبر میکنی. و ایلا اگر میتونستی صبر نمیکردی، این صبر جمیل نیست. صبری که تو شکوا باشه. یا بعضی میگه من صبر میکنه ولی خدا چرا این کار را با من کرد؟ چرا از این را از من گرفت؟ این صبر جمیل نیست. صبر جلیل جمیل الله زیلا شکواهی کوچکتری شکواهی تویش نباشد کوچکترین کوچکتری غلایی تویش نباید شد. بلکه الحمدلله على کل حال باشد لذا ای پیان اینها که مسخره می کنن قیامت را و می اون عذاب را زود تربیار شما صبر کن فصبر صبر جمیلا چرا انهم یرونو بعيدا و نراه قریبا همانا این مشرکین این منکرین را بعید می دانا بعیدا عن الوقو یعنی اصلیم بعید است چینی چیزی واقع بشه امکانش نیست؟ انا این طور چون اعتقاد نداشتن؟ لذا بینیسی بدلیل عدم اعتقاد این هم یرونو بعیدن همانا انها اون را بعید از وقومی دانستان و نراه قریبا اما ما اون را قریب می بینیم اللہ می فرمائن اون قیامت نزدیکه زیاد دور نیست اون قیامت ان کی هست اون کیش اشرا کیفیش رب پوش یعنی با چی کیفیتی است الله تعالی هر جا که بحث از قیامت میشه زمان قیامت را بیان نمی کیفیت قیامت را انسان کیفیت ان را و شرائط را همیشه در دل داشته باشد و آمادگی داشته باشد یوم تکون السماء کل مهل روزی که می شود آسمان مثل مهل مهل میگه فلز گداخته شده است فلز زوب شده، مس هست، برنج هست، بقیه فلزات هست، اینا وقتی زوب میشن چطور اینطور قطر قطر میچکند، آسمان اینطور زوب میشه. و تکون الجبال کل عهنی، و می میشوند مثل عین مثل پشم حلاجی شده، یه پشمی را پشم، خب انبوهی دارد وقتی که میزنم با چوب و حلاجیش میکنه از هم جداش میکنن، خب پشم را نگه در اون طرفش را می از بس نازکه. کوه ها همین طور پودر میشن و پاش میشن. والا حیممون حمیما هیچ دوستی از دوست دیگر سال نمیکنه چیزی نمیخواد نفسی نفسی هست. هر کسی به فکر خودش هست. یوب هم دیگر را نشان داده میشن. یعنی دوستان خودتون را می بینید. نه به دادش میرسید نزش کمک میخوای. هر یکی فرار برای خودش. یا وذل مجرم لو یفتدی من عذاب یوم اذ ببنی دوست دار مجرم هر کسی که در دنیا جرم و جنایت کرده لو یفتدی ان کفدی بذات من عذاب یوم اذ ببنی از آواز عذاب اون روز فرزندش را انسان دلش می‌خواد اینجا انسان برای فرزند جان میده برای فرزند خودش می‌میره ولی اونجا دوست داره که برای فرزند خودش انسان جهان ارز کنم که خود فرزند را فدیه بده خود فرزند را واقعا انسان اینجا خودش را ناراحت میکنه فرزند را راحت میکنه بچه شب گریه میکنه پدر مادر تا صبح بچه را لالای میکنه خودش بیخوابه ولی بچه خواب بره چیزی نباشه شکم بچه را سیر میکنه خودش گرست نمیخوابه اگر جای نرمی باشه به بچه میده خودش جای سخت میخوابه اگر پتوی گرمی باشه بچه خودش را میده ولی خودش سردی تحمل میکنه دنیا همین طوره حتی انسان اگر به ناس مسئله مرگ و زندگی پیش بیاد انسان اینقدر خدا در دل پدر و مادر اینقدر عاطفه داده اینقدر رحم داده که میخواد خودش بمیره ولی وقتی بناس از دو تا یکی بمیره خودش بمیره بچهش زنده بمانه این اتفاقه زیاد افتاده شاید شما هم سراغ داری چیز هایی را بنده خبر دارم پدر و پسری بخاطر مالی موادی گرفتار شده بودند تو زندان بودند اونجا باید یکی قبول می کرد پدر به پسر میگه میگه که من عمرم را گذراندم، تو جوان هستی هنوز امید داری من قبول میکنم بگردن میگیرم تو برو تو نجات بیای. هرچی پسر میگه نه بابا من قبول میگه نه. پدر قبول میکنه بچه آزاد شد پسر اید پدر اعدام شد لذا اینقدر خدا تعالی به پدر چی داده شفقت داده مهربانی داده که آماده هست برای این که از مرگ و زندگی باید یکی را قبول کنه یکی از پدر و پسر میگه من بمیرم بچه هم زنده بماند ولی اونجا نه اونجا سختی به ای هست که الله می فرماید یا ودل مجرمو مجرم دوست دارد لو یفتدی من عذاب یوم ایدم ببنی این کی فدیه بدهد در عوض عذاب اون روز فرزندش را و صاحبته و همسرش را این همسری ای که در دنیا اظهار عشق و محبت میکنه برایش دنیا رو میگه بپایت میریزم اونجا خود این همسر را فدیه میده تا نجات بکنه و اخیه اون برادری که بازویش هست انسان برای برادر جان میدهد در دنیا و فصیلتهایی که تقوی و تمام قبیله‌یک داده قبیله‌یک را بناد داده تمام و, و قوم قبیله خودش بده ولی خودش نجات می‌یابه تنها پسر را بده نه تنها زن بده برادر قوم و بده انسان میخواد اون وقت اگر دست سرسش باشه در اختیارش باشه تمام اهل زمین را بده و من فی الارد جمیعا تمام اونها که در زمین احسان جمیعا را بده ثم ینجی بعدا خودش نجات بیابد اما آیا از این راہا یکی وجود دارد که انسان نجات پیدا بکنه؟ اللہ می فرموید کلا هرگز خلاصی نیست هرگز نجاتی نیست انها لزا همانا اون آتش جهنم لزا شول می زند لزا. اون آتش شول زن را می گویند شوا پوست کننده هست پوست را میکنند شوا پوست را میگن. گنند یعنی می اون پوست را تدعو من ادبر و این آتش چه کسی را می چه کسی را فرا می خاند؟ الله می تدعو طلب میکند، کند، صدا می زند من ادبر و کسی که در دنیا پشت داده پشت داده به انبیا، پشت داده به خدا پشت داده به کلام خدا و روی گردانی کرده مگر پشت دادن همون تولا نیست چرا؟ اما یک فرقی دارن علمان نوشتند من ادبر پشت داده از نظر ایمان از نظر اعتقاد و تولا از نظر عمل یعنی آتش فرا می صدا می زند چه انسانی را کسی که ادبره کفر کرده پوش داده شرک کرده کفر دا کرده عقیدهش خراب بوده و تولا و کسی که ایراز کرده از عمل فساد عمل داشته دزدی کرده زنا کرده قتل نفس کرده بقیه گناهان را انجام ده این تولا هست و اون انسانی ببین انسان این کارها را برای چی میکنه به خاطر سرمایه دنیا به خاطر اینکه دنیا را انباشته بکنه خیلی از مردم هستند مردم را میکشند تا اضافه بشه بعضی ها آب مردم می برم به خاطر مال لذا الله می اون انسانی که و جمع فا اوعا اون انسانی که جمع کرده مال را فا اوعا پس اونها را امباشت کرده روی هم ذخیره کرده ان الانسان خلق هلوعا الله می همانا انسان آفریده شده هلوع یعنی بیتاب انسان بیتاب است هلوع تحملش کمه خود قرآن حلو را تفسیر کرده حلو یعنی چه؟ اذا مسه شر و جزوع هرگا بین انسان شر مصیبتی، آفتی برسد داد و فریاد میکند جزوعاً آهو آویلا داد و فریاد بی صبری و, اذا مسه الخير و منوعا، اما هرگابی این انسان خیری برسد مالی سروتی سرمایه منوعا یعنی بخیل و بازدارنده میشه منع اصل بازدارندگی را میگن چی میشه منوع میشه مبالغه منع هست یعنی بازدارنده میشه بخویل میشه انسان در فطرتش اینه فطرت انسان خرابه مگر طاعت و عبادت فطرت انسان را درست میکنه کسانی که گوش به فرمان ربشون باشند، اونها بخلشون تبدیل به سخام میشه، اونها کفرشون تبدیل به ایمان میشه، اونها صفات بدشون تبدیل به صفات خوب میشه. ببین الله انسانیت را فرمود، در فطرت انسانیت این بیتابی و این زعفا هست. مگر نماز گزاره محلوم میشه نماز اصلاح میکنه انسان را ان صلاة تنها عن الفحشائه والمنکر نمازی که با حضور قلب باشه نمازی که حق نماز را در اون نماز ادا بکنی اون نماز ترا اصلاح میکنه تزکیه میکنه لذا الله میفرم از بین همه اوصاف اول نماز را آورد این بیانگر اهمیت نماز هست و بیانگری این هست که از همه اعمال اصلاحی که بیشتر انسان را اصلاح میکند نماز هست الا المصلین مگر نمازگزاران الذين هم على صلاتهم دائمون مگر کسانی که بر نمازهای خودشون مداومت میکنن نمازشون دروزه نیست بعضی هستن فقط مشکل پیش میاد نماز میخونه بازی مصیبتی پدر مرده چه روز نماز میخونه بعدم فراموش میکنه بعضی ها حج رفته از اون طرف میان نماز میخونه بعدا ول میکنه بعضی به زندان افتاده اونجا شب و روز نماز شب میخونه اینجا میاد چند روز میخونه بعد ترک میکنه بعضی مسلمان رمضانی هستن ماه رمضان ماهای خاص نماز میخونند الله میفرم اینا رو قبول ندارم الا المصلیین الذين هم على صلاتهم دائمون نماز گزارانی که بر نمازشون مداومت میکنند، همیشه نمازشون رمیخوانند، در هیچ شرایطی نماز را ترک نمیکنند. اونها استثناء هستند، اونایی که اینقدر با خدا رابطه دارند که روزی پنج بار به ملاقات و معراج پروردگار میروند و در سجده با خدا راز و نیاز میکنه اینها دیگه اخلاقشون فرق میکنه درست میشه والذین فی اموالهم حق معلوم الله میفرما انهایی که در در اموالشان حق معلوم است در اموالشان حق معلوم هست یعنی چی یعنی مطلبش اینه که خدای عزوجل در اموالشان، اموالی که بهشون داده، این مال را برای خودش نمی دونه. میگه این مال مال من هست و مال دیگران هست. بعضی هستن خدا بهشون مال داده میگه این مال فقط مال من و زن و بچه هم هست. یعنی همین عقیده را دارد چون فقط حزینه میکنه این مال را برای خودش زن و بچهش، برای خانوادهش، خودش زندگیش در رفاه است هر روز دو تفریحات هست همیشه بهترین خوراک بهترین لباس بهترین امکانات مبارک انسان استفاده بکنه اما به اینکه فقط این مال را برای خودش اختصاص نده برای خانواده‌اش اختصاص نده اون کسی که یک حق معین مشخص را قائل هست للسائل والمحروم برای اون بندگان خدای که میان سوال میکنند و برای اون بندگان خدایی که سوال نمی کنن محرومند یعنی هیچکی نمی شناسه اونها را این هست کسانی که در حق در مالشون حق معلوم هست مثلا انسان های واقعا خوش نصیب هستند هرچی چی درآمد دارند بارها بنده عرض کردن ممی کنم هرچی درامت دارن یک بخشی را قلکی جداگانه گذاشتن یک بخشی از درآمد و از منفعت مالشون را نقدن می تو اون قلک که بعدن به فقرها برسونند، بعدن به یتیمها برسونند، به بیوها برسونند، به خانواده زندانیها برسونن به طلاب برسونند، به مساکین برسونند. لذا و بعد همیشه دقش را مورد تفقد قرار بدهید یکی کسانی که میان سائلا سوال میکنم میگه به خاطر خدا کمک کن این هم رد نکن اما این سائل اگر شما ندید اون یکی میده اگر اون یکی ندید سومی مغازه بهش میده بالاخره چیز گیرش میاد می اما یک دسته هستند که اونها را حجاب و حیا شرم و استغناء نمیذاری که اونها بیاند و تخونهج نشسته گرسنه میخواد یا بیوه‌ای هست نمیدونه بچهاش رو چی بده اون را باید وظیفه تو هست اولا وظیفه حاکم هست وظیفه پادشاه هست که تمام مستمندان را تفقد کند دنبال کند که اینها گرسنه نخابند عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ شبها گشت میزد که مبادا کسی باشد گرسنه باشد خداون یغه عمر را بگیرد و میگفت اگر سگی از گرسنگی کناره فرات بمیرد عمر خودش را در قبال مسئول میدونه یعنی حتی حقوق حیوانات را اون قائل اون حاکمان راستین لذا بعد از حاکم باید آمه مردم شما ای که خدا به شما سرمایه داده شما اونها را تفقد کن اونها را دنبال کن اینا کیا هستند؟ هر ای برو امام محله هست خیر محله هست شورای محلی هست ریشتفود بزرگ محله هست از طریق انها اینجا افراد کم کمدرامت افراد بی بزاعت افراد بی سر پرست کیا هستند؟ ما اینها را میخوایم شناسایی بکنیم لذا انها را شناسایی میکنه و یک بخشی از مال خودش را اختصاص به اینها میده به انها رسیدگی میکنه وقتاً فوقتاً برای اینها خوراکی میبره این هست واقعاً اون کسی که بهشت را در این دنیا خریداری میکنه الله تعالی انها را نام برده کسانی که نماز میخانند و کسانی که در اموالشان حق معلومی هست یک حق معینی جدا کرده لسائل والمحروم برای کسانی که سائل هستن ببینید اینجا منظور از این زکات نیست هنوز حکم زکات نیامده بود اون زکات یه بر شما این سوره سوره مکی هست هنوز دستور زکات صادر نشده ونجا خدای تعالی صدقات که از همون روز اول مشروب بود لذا اونجا الله می فرماید که مال خودش را میده هم بسائل میده کسی که سوال میکنه و هم کسی که محروم از سوال نمیکنه و الذين یصدقون بیوم الدین کسانی هستند كي تصديق مي كنن روز قيامت را والذين هم من عذاب ربهم مشفقون كثاني هستن كي از عذاب ربشان الله در وسط مي فرمايت در وسط اوصاف اي مؤمنين ان عذاب ربهم غير و معمون اي بندقان عذاب رب انها غير و معمون است يعني چيني چيزي نيست كي ازو من باشيد خودتون را ايمان ندانید خودتون را محفوظ و مأمون و احتمال داره که به شما هم بیاید. والذین هم لفروجیم حافظون کسانی هستن که افت خودشون را حفظ میکنن، شرمگاه خودشون را حفظ میکنن، ایلا علی از او ما مملکت ایمان مگر نیازی داشته باشند نیاز جنسی خدا تعالی راه مشروعی هم قرار داده مگر بر همسرانشان یا کنیزهایشون که در زمان قدیم بودند فا این هم غیر ملومین این دو گروه قابل ملامت نیستند این دو گروه شرعا قابل ملامت نیستند نیاز جنسی را انسان اگر در جای مشروع برآورده بکند اما فمن ابتغا ورا اذالک هر کسی غیر از این بتلبد راه دیگر هر چی غیر از این هست اون راه راه نامشروح هست. چه الایاذ بالله زنا باشد لوات باشد استمنا با باشد یا نکاه موقت و یک شب باشد الله می فرماید فمن ابتغى وراء ذلك هر کسی بغیر از این رب به طلبد فاولئک هم العادون این افراد این گروه متجاوزند از حد شرعی تجاوز کردن گذشتند لذا اینها باید پاسخگو باشند والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون کسانی که نسبت به امانت ها و عهد و رعایت میکن هر عهدی که با خدا بستند با بندگان خدا بستند اون عهد را پایبندن رعایت میکنه هم بشهاداتهم قائمون کسانی که نسبت به شهادت پا پابرجا هستن یعنی هر شهادتی هر گواهی هست اونها شهادت را اون که حقش هست نگاه نمی‌کنه به نفع یا به چه کسی تمام میشه والذین هم علی صلاتهم یحافظون کسانی که بر نمازشون محافظت میکنن دقت بفرمایید که اول و آخر نماز ابتدا وقتی که صفات اهل بهشت بیان شدن کسانی که از جهنم نجات می یان فرمود ال المسلن الذين هم على صلاتهم دائمون. آخر هم فرمود والدین هم علىصلات صلاتهم حافظون. اولا این اهمیت نماز را می رساند. اگر وصف جدیدی هست هم همونجا گفته می شد. اما خدای از جل نشان میده که همه استصففات خوب را داشته باشید اما. مهم ترین کار شما باید نماز باشه اول هم نماز آخر هم نماز اما فرق دائمون و یحافظون چی هست دوام اینه که همیشه نماز توضیح دادم نمازش موقتی نباشه نمازش مقتعی نباشه نمازش فصلی نباشه همیشه گی باشه چه در سفره چه در حضره چه سالم و تندرست چه مریض چه حالت امن چه حالت خوف در هر صورت نماز را و محافظت نماز یعنی تمام شرائط نماز ارکان نماز آداب نماز سنن و مستحبات نماز همه را سعی بکند این محافظت نماز یعنی تمام شرائط و تمام حقوق نماز را بعضی از شرایط ظاهری هستند مثلا رو برو بش قبله باش لباست پاک باشد بدنت پاک باشد محل نمازت پاک باشد بعضی از شرایط و این طرف اون طرف توجه نکنی التفات نکن بعضی از شرایط باطنی و درونی هستند خشو خضو استحزار خدا را تو عبادت کن خدا را می بینی چون خدا تو را میبیند با این کیفیت با توازو با این وضعیت نه اینکه الله اکبر میگوید تازه شروع میشه کارایش. هی تصور میکنه این ساعت چیکار بکنم اون ساعت چکار بکنم این دیگه محافظت از نماز نیست تمام شرایط نماز رعایت نشده پس ظاهر و باطن نماز مطابق شرایط باشه این هست در واقع چی در واقع شرائط نماز و محافظت نماز کسانی که دارندگان این شرائط هستند الله عز وجل مژدهشن میده اولا فی جنات مکرمون از اون الا المسلین شروع میشه این افراد این گروه در جنات و در باغات اعزاز میشند مورد اکرام و احترام واقع میشوند فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُخْتِعِينَ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِذِينَ الله تعالی می فرماید اینجا در واقع زجر و سرزنش است برای کفار رسول الله صلی علیه و وسلم گاهی در مطاف کنار خانه کعبه قرآن تلاوت می کرد مشرکین از هر سمت سو جمع گوش می گوش میکردند بارها گفتیم خدمت شما؟ گوش میکردند و ولی ایمان نمی آوردند الله تعالی می فرماید فمال لذین کفروا چه شده برای کسانی که کفر کردن قبلا که به سمت سوی شما دوان دوانند مطیعین یعنی مسرعين تند تند میان عن الیمین و عن الشمال عزین از راست و از چپ عزین یعنی جماعت متفرقه گروه گروه گروه گروه بی سمت سمام یعن هر وقتی که شما میستید قرآن میخانید همه میعن ایطمعو کل امرئی من هم این یدخل جنت نعیم آیا تمع دارد هر مردی از اونها که داخل بشه در جنتی که سرپا نعمت است اینها ها به بتمع جنت آمدن کلا هرگز چنین نیست این ردعیه است انا خلقناهم مما یعلمون اللہ می چون انها ایمان نیاوردند انها هیچ وقت تمعی بهش را داشتن باشند همانا ما آفریدیم ان انسان را مما یعلمون اون چیزی که اونها میدانند، یعنی از ایک نطفه ارزشی ندارد تا زمانی که ایمان داشتن باشند فلا اقسمو برب المشارق والمغارب اللہ تعالی می فرماید انجا که ما قدرت داریم ان انسان را ببریم انسانهای دیگه بیاریم ولی خدای اززوجل هنوز مهلت میده اینها را عذاب نمیده فلا فلاقس سوگند به رب مشارق و مغارب از کردم مشرق یکی نیست هر روز از یک زاویه خورشید طلوع میکند امروز از این درجه فردا از اون درجه پس فردا سی و و پنج روز هستند سی و و پنج, پنج در دا درجه دارد غروب هم همچنین لذا قسم به رب مشارق مغارب انا لقادرون ما قدرت داریم ما توانائی داریم على ان نبدل خیرم منهم بر اینکه ما تبدیل بکنیم بهتر از اینها یعنی اینها رو ببریم انسانهای بهتری ببر بیاریم و ما نحنو به مسبوقین ما آجز نیستیم مسبوق چرا میگن کسی که آجز بشه کسی که بازد. دو, دو نفر مسابقه میده یکی میشه سابق ایکی دیگه میشه مسبوخ می دیگه آجز میشه. ما آجز نیستیم ولی ما هنوز مهلت میدیم. لذا اینجا تسلی برای پیغمبر هم هست و هم زجر و تخویف دنیاوی برای همین مسخره کنندگان الله میفرمه فذرهم بگذار اینها را یخوذو و یلعبو خوز میگویند وارد بحث شدند وارد مطالب بشن هم مطالبی که مسخره می کنن بکنند و بازی کنن حتی یلاقوا یومهم الذی که انها مواجه بشن ملاقات کنن آن روزشان را که در آن روز, روز وعده داده می شوند یوم یخرزون من الاجداث روزی که همه اینها از قبور خارج می شوند سرا با سرعت خداوند وقتی که بیرون بکند با یک نفخه همه با سرعت بیرون میافتند کانهم ال النصب یوفزون گویا اونها به سوی یک نمادی صبح هم خاندیم نصب میگویند هر نمادی که اونجا مشرکین جمع میشن و عبادت میکنن دیدید که نمادهای شرک چه شلوغ هست مساجد کسی نمیاد ولی نماض های شرک این قدر مردم جمع میشن که جای پاهم نیست جاهایی که مردم اونجا برای عبادت غیر الله میرن بودخانه ها و دیگر جاهایی که نصوب هستن خداوند می چون انا یک عشق و علاقه خاصی به نصوب دارند به این نماض دارند اونجا چنان بسوی میدان محشر فرار میکنند که انهم الى نصبی یوفیغون گویا انها بسوی یک نمادی از اون نمادهای شرک می دوند. ولی تن تن می روند انجا خاشعتاً افسارهم ترحقهم ذل الله میفرماید فرماید چشمهاشون پایین هست خاشعتاً ابصارهم ترحقهم ذل ذلت و خاری اونها را تحت پوشش قرار داده. ذلک اليوم اللوی کان و یعدون این روزشون هست اون روزی که انها در اون روز وعده داده میشوند، لذا همون روز حاضر میشوند، اونجا خجلند سرفکنده هستند شرمسار هستند در محضر ما حاضر می شوند.